اسم, العاله، اسم, العاله، اسم آله اسم آله اسم آله هست فتحت الباب بالمفتاح باز کردم در را با کیت مفتاح اسم آله هست آله اون چیز رو میگن به اصولش کاری انجام میگیره نشرت الخشب بالمنشار تراشیدم چوب را منشار منشار عری حرستو منشار عرمیشه حرستو البابا بالمحرافی شخ زدن زمین رو با تی؟ ما به بیش مگیم ننگار خلاند خلاند خلاصه محرافی مونیه که زمین شخ میزنن چندون قوی دارد خلاند قاعده این در سد و و چارم میشه ماله اسم آله که نسل خواه بردتو حدید بلمبرد سوحان کردن آهن رو با سوحان غزل تو صوف بلمغزل ریسیدم پشم را با اونو بیشتی میگن که فیرزاله باشیم می... میتنیدن رشته رو باتی میگه بافن همین رشته باف اسم همونیه که باشه چه درست میکنن دیگه پشم زمان قدیم منطقه ما ما به بیش میگیم جلک یعنی جوری طورش میدادن آه می دیگه درستش میکردن قط الجملا بالمقوت كنس الخادم الأرض بالمكنسه طرق الحداد الحديده بالمطرقه لقى طفل الطعام بالملقه خوب هنا همشون مفتاح منشار محراث مبرد مغزل مقواد مكنسه ومطرقه وملقه اسمه اسمات يبدون اله بودن باينه كار انجم ميگرفت اما بيعيد قواعد كي ترى اسم الاله اسم مسوغ من مصدر الثلاثي المتعدي اسم آله اسمیست که درست میشه از مصدر سلاسی فعل متعدی لدلالتی علی ما وقع و بواستهی دلالت میکند اسم عالی بر آنچه که کار بواسته اون انجام گرفته است. دلالت میکند بر چیزی که کار بواسته اون انجام گرفته است. لسم آله ثلاثت و اوزان سماعیتون اینجا هم تا از امثل را ورده بود تون سه به امثل گروه اول المفتاح و روزن مفعال هست امثله گروه دوم دو مبرد بر وزن مفعل هست امثله گروه سوم مکنسه بر وزن مفعله چون اسم اعلی بر یکی از این سواز میاد به خاطر این سه تا گروه امثله رو آورده بود لاسم الاعلی ثلاثه اوزان و وهی اسم اعلی سباعن سماعی داره یعنی ما سماعی بودنش به خاطر اینه که مثلا اگر بخوایم از اکلا یا از برده اسم آله درست کنیم نمیدونیم برای کدونی از این ستاشو ببریم سمائی هست هرچه عرب کار بردن ما برون بابش میبریم مفعالو مفعالو. مفعال و مفعال و مفعالتون هست پس این بود درس اسم آله شما ما شدید بزرگوارن به همین سادگی این هیچ قاعده خاصی دیگی نداره و خاطریم که اسم آله سمایی هست